ای من در میخانه به سبلت رفته، ترک بد و نیکه هر دو عالم گفته، گر هر دو جهان چو افتد به کوی، بر من به جویی چو مست باشم خفته. قطره بگریست که از بحر جداییم همه، بحر بر قطره بخندید که ماییم همه، در حقیقت گری نیست خداییم همه، لیک از گردش یک نقطه جداییم همه. تا که آن خورم که دارم یا نه، وین عمر و خوش خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قده باده که معلومم نیست، کیندم که فرو برم برارم یا نه. تن در غم روزگار بیداد مده، جان راز غم گذشتگان یاد مده، دل جز به شکر لب پریزاد مده، بیباده ما باش و عمر بر باد مده.